خدا را کم نشین با خرق پوشان رخ از رندان بی سامان ما پوشان. در این خرق بسی آلودگی هست خوشا وقت قبای می فروشان. در این صوفی وشان دردی ندیدم که صافی بعد عیش دورد نوشان تو نازکتب و طاقت نیاری گرانی های مشتی در پوشان چون مستم کرده ای من منشین چون نوشم داده ای زهرم منوشان بیا وز قبن این سالوسیان بین سراحی خوندل و بربد خروشان ز دلگرمی حافظ برحضر باش که دارد سینه ای چون دیگ جوشن